پس بر حذر باش و دقیق انتخاب کن روني في <تصفيق> تل المعالي بالكف مصحف ورا الشاشي سليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني كل المنايا بك في المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسبداني بالكف مصحف ورا الشاشي سليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني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 لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنواندگان عزیزی راژیو صدای خلافت امید است صحت و سلامت بوده باشید توجهتان را به تحولات جهانی خلافت اسلامی جلب میدارم بسم الله الرحمن الرحیم سربازان خلافت اسلامی در شهر بغتالونی بنگلادیش یک هندو را که به حریمی رسول معظم اسلام توهین می کرد با زربی چاقو کشتند. درگیری ها در منطقه اشعبانیهی ولایت حرب بین مجاهدین خلافت اسلامی از یک طرف و مخالفان حکومت سوری از طرف دیگر رخ داد. در همین حال یک حمله کرنده استشادی خلافت اسلامی مخالفان را در همین منطقه مورد هدف قرار داد که به تعقیب این حمله مخالفان حکومت از این منطقه پا به فرار گذاشتند در ولسوالی ابو غریب در غرب بغداد امیر لیوای 24 ارتش عراق همراه محافظانش از سوی مجاهدین دولت اسلامی به قتل رسیدند سه حمله کننده استشادی بالای پُسته های نیروهای عراقی در منطقه بو حیات در شرق شهر حدیثه عملیات استشادی انجام دادند که منجر به کشته شدن ده ها عسكر از بین رفتن ها گردید نیروهای کردی در نزدیکی کمربند شهر قامشلی آماجی یک حمله استشادی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن 8 عسکری کردی و جراحت 6 دیگرشان گردید. ارتش خلافت اسلامی بعضی مناطق نیروهای پیشمرگار را در منطقه صلاحیه و کوه بعیشقه واقع در نزدیکی شهر موسیل را تحت کنترلشان درآوردند. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از موتر مملو از مواد منفجره زائران شیعه را در منطقه نهروان در شرق بغداد آماج حمله قرار داد در اثر این حمله دست کم 100 شیعه کشته و شماری هم زخم برداشتند این بود خبرهای جهانی خلافت اسلامی حال توجهتان را به برنامه های دیگر جلب می‌دارم منهاج تا منهاج برنامه‌ای فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی درکل فرقه های بسیار زیاده بین امارت و خلافت وجود داره امارت به عنوان یک تشکل قومی و به عنوان یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کرد و نقطای را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت که تنا محض ادعا داشتند این برنامه را یک شمب شب ها و سی شب ها از رادیو سوای خلافت فراموش نکنید. منحج منحج من آه آه آه, آه, آه تنانه های مؤمن رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را خوش آمدید میگم با برنامه منهج تا منهج باز هم در این برنامه استاد احرار را به خود داریم امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید مسلمانان گرامی در برنامه امشب خود میخواهیم که بالای جهان بینی بحث کنیم چون مسلمانان دائم فریب کفار را خوردند های این و آن از ای خاطر ما در برنامه منهج تا منهج کوشش میکنیم تا موضوعات را مطرح کنیم که فرق میان حق و باطل شود خب می مستاد محترم بالای موضوع امشب خود که جهان بینی چیست در این باره به ها معلومات بتین الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من نبی بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام اما باب تشكر این که باز به ما وقت دادید باز هم مخاطب کسانی که صدای ما را میشنوند همان شعر عبدالله ابن مبارک است که عابد حرمین مخاطب کرد و برایش چنین نوشت که ای عابد حرمین اگر به ما نظر بی می بینی که عبادتت را بازیچه قرار داده ای اگر افراد با عشق رخسارشان را تروخیس کنند، سینه‌های ما با خون رنگین می شود. بله. قبل از اینکه وارد بحث جهانبینی شوم می خواهم بگویم که اسلام مجموعه از افکار پراگنده و راههای متفرق نیست که از اینجا و آنجا جمعوری شده باشد که مسائل جزئیاتش با کلیاتش هیچ ربطی نداشته باشد بلکه یک نظامی است که اساس و بنیادش بسیار دقیق و مستحکم پیویزی شده است و همین مکتب اسلام است که همین فکر اسلام است که حرکت ایجاد میکنه و یک قدرت اجتماعی را به انسان میدهد رسالت و تعهد و مسئولیت میدهد بیش از که وارد بحث جهانبینی شوم میخواهم که بالای تعریف جهانبینی و فرق جهانبینی با ایدئولوژی چیز بگویم هر مسلک و هر مکتب نسبت به نظام هستی و نسبت به نظام کونی یک ارزیابی و یک فکر و یک تصور دارد که در حقیقت همین تصور و ارزیابی نسبت به فرد و اجتماع در یک مکتب حیثیت بنیاد همان مکتب و همان مسلک و همان روش دارد و همین ارزیابی در یک اصطلاح عام جهان بینی گویند و یا به یک تعبیر ساده مجموعه بینش ها تحلیل ها و تفسیرها نسبت به نظام هستی جامعه و فرد را جهان بینی بیشتر بحث در جهان بینی بیرامونی این مساله می شود که انسان مکلف است یا مختار های کدام هدف را در پی دارد یا همان آزاد خلق شده و یک تعبیید و یک تعریف ساده دیگر جهان بینی یعنی شناخت و معرفت جهان و جامعه است و فرقش با ایدئولوژی همان قسمی که در نخست گفتیم که هر مسلک و هر مکتب در, در دایره فکر و طرز دید خود هم جهان بینی دارد و هم ایدئولوژی دارد و ایدئولوژی هم مجموعه بایتها و نبایتها که چنین شود و چنان شود این را ایدئولوژی میگد و ایدئولوژی همان روشی است که همان روش و نتیجه است که همان تصور و فکر را که نسبت به جهان کس داره مورد اجرا قرار میده معمولا جهان بینی به دو قسم هست. یکی جهان بینی اسلامی یک جهان بینی ثابت محکم و آسمانی است که توسط البیای ابلاغ می و یکی جهان بینی جاهلی است که در جهان بینی جاهلی بیشتر ترکیز و بحث بالای جهانبینی مادی است. و در جهانبینی مادی نظر جهانبینی مادی نسبت به جهان این است که جهان در مسیر مجهول در حرکت است و هیچ هدف و مسلحت در کار نیست یعنی جهان مبدایش ماده است و جهان مادی است. و ماده را اینا میگن که ماده همان همان گپا و همان صفات کمال که ما با الله سبحانه و تعالی نسبت میدیم اینا کلا میارن محدود میسازن و نسبتش به ماده میدن و هر چیز غیر از ماده و میگن که ماده هم امان است که حواس پنجگانی ما آن رو لمس میکنه و میبینه غیر از ماده هر چیزی که فرض یا موهوم است یا مقدوم است یا هیچ وجود نداره یا وهمیات است همین قسم است که در این جهان بینی یعنی تصور این جهان بینی در کل چ تصور مادی است و کللا ذهنیت و مفکوره و تصور الله سبحانه و تعالی از این جهان بینی یعنی نفی هستک و در فرهنگ این جهان بینی و در این مسلک اصلا تصور بنامه الله وجود نداره دوم مساله در این جهان بینی مادی نظر و تفکر و تصور نسبت به انسان است که میگن که انسان امروز باینمی، با پیکر مقبولش بامی رخصار مقبولش همان حیوان تکامل یافته دیروز است. چی معنا که یک سلسله مولیکول ها ذرات و عتم ها که فرقش با حیوان در همین است که یک سیستم عصبی پیچیده داره که دارای فکر و شعور و چی استک و در زندگی هم زندگی اینها منحصر میکنه بین تولد و مرگ و بعد از مرک میگه انسان ذراتش در هوا پراغنده میشه و نهایت امر از بین میره. و در این جهانبینی چیز بنام هش رو چیز بنامه, بنامه باسپرس و مکافات و مجازات وجود ندارد. و این جهانبینی تصورش بیشتر این جهان جهانبینی در جهان در قالب مکتب ماتریالیزم یا مکتب کمیونزم جمال. پیش میشه که همان دیکتاتوری کارگریس و یا این جهانبینی در مکتب فیودالزم یا مسلک سرمایه‌داری یا فردگرهی که فرد به قدرت کمال می حالا حال سر از این که در نظام این بینی در نظام اجتماعی بعض گپای خود دارد کلاس الله سبحانه در یکی از آیات قرآن کریم می‌فرماید که اینان به جز پیروی از گمان و آنچه خواهشات نفسانی می‌خواهد دلیل ندارد مسئله اول وقتی که ملاحظات که بالا این جهان بینی است این است که اینا میگن که ماده مبدا هستی است یعنی و جهان مادی است یعنی وجود همه چیز از ماده است همون نسبت را که ما به الله سبحانه و تعالی میتیم اینا بر ماده میدن یعنی ده. هر چیز هر چیز ها عاملش ها ماده می در حالی که از نظر علم فیزیک اودو دو ترمودینامیک دینامیک با این نظر این نظر باطل ثابت کرد و با این نظر است که یک زمان فرامی رسد که حرارت همه اجسام یکسان می شود وقتی که حرارت اجسام یکسان شد باز فیل و انفعالات کیمیوی صورت نمی گره و زندگی غیر ممکن می شود اما نظریه انتروپی است که جهان باز به سوی زوال میره و از هم می پاشد. و این نظریه همین نظریه ازالی بودن مادره چی کرد؟ غیر حقیقی و غیر واقعی و بدون اصل ثابت کرد در این مسلک در نظام این سیاسی اینا میگن که فرد ساز است یعنی فرد محور قانونگزاری است همان است اه. که ما شما در این قانون اساسی یا قانون کفری افغانستان میبینیم که در یکی از ماده هایی که متودی وکلای پارلمان میکنه که وکلای پارلمان وظایفشان تقنین است، قانونگذاری تصویب است که ام قانون را پاس کنند توشی است که پیشش کنند و تدبیق است یعنی امی قانونگذاری که از آن الله سبحانه و تعالی حکم ازان الله سبحانه و تعالی امی قانونگذاری میآورند و منحصر میکنند به فرد یعنی فرد به حد این اجازه میدهند که فرد میتواند حلال کند و حرام کند و یک فرق کلیمی جهان بینی با جهان بینی اسلامی همین است یعنی کلا وقتی که بحث اساس این نظام از نظر اجتماع بر پایه خواهشات و تمایلات جنسی و سوار است و اصل تعاون در این نظام اصلا وجود ندارد و اینمی است که میبینیم که به‌زور آتش و آهن همین نظام ها در روی زمین در کشورها تطبیق میشد ولی یک مدات میگیره بعد ازو یک مدت به خاطر از اینکه خلاف فطرت و خلاف همان سرشت انسانی است از هم می پاشد و مردم علی این نظام ها به پا میخیزند استاد در خلال بحث شما گفتید که نظر این جهان بینی یعنی جهان بینی مادی نسبت به انسانی است که انسان امروز همان حیوان تکامل دهنده ده دیروز است یعنی چی این همان نظر اولوشن یا اصل انوا که زیستشناس انگلیسی بنامه چارلیس تشارلیس داروین بود همین نظریه را مطرح کرد که یک نظریه پوچ و مزخرف بود این نظر اصل انوا یک نظر الهادی است و معمول در افغانستان هم تا یک زمان این نظر به یک قضیه توسط کمونست ها دامن زده می شد و حال هم به یک نظر در باز رشته های پانزی ساینس به خوانش گرفته میشه که نظر نظرش این که همین انسان که امروز در مقابل ما هست همان حیوان تکامل دیروز به این معنا که یعنی انسان میکروب معرفی میکند در حالی که تمام ادیان به این اتفاق دارد که انسان از آدم است و آدم از خاک خلق شده بله. و این نظریه را الحمدلله با تایید کرد و ساینس هم تایید کرده و بحث های گرم زواسط زاکرناک و سال هم در این مورد شده و ایره ثابت ساخته کدام نظر را که ادیان به ویژه قرآن کریم نسبت به خلقت انسان و نسبت به خاکی بودنش در اوائل مطرمه سازه آن چیز را ثابت می سازد که ای مردم زحم میکن. تشارل داروین این خودش یک کتاب نوشته کرده در 1859 و کتابش تحت نام اصل عنوانش این بدبخت اساس حیات رو به یک میکروب تعبیر میکند چندین میلیون سال در جا چندین ملیون سال در یکی از این یعنی میگه چندین میلیون سال اینمی میکروب در آبهای گرم وجود داشت و نهایت امر مگه این میکروب در, در آلت تکامل یعنی پیش رفت. و نهایت همه در یکی از مراحل از این شادی جور شد ده. و بعد از شادی و باز هم تکامل کرد که این چی جور شد از انسان جور شد یعنی امروز این انسان همون حیوان است که در یکی از مراحل مکروب بوده و از یکی از مراحل خوی نظر هم توسط بعض اندشمندان و توسط بعض از افراد رد شد یعنی استاد جهان ادیان و مذاهب زیاد وجود داره همین اقیده خاص مربوط کدام مذهب یا عقیده میشه و یا در عموم کدام مذاهب و ادیان که خارج از اسلام هستند همین نظریه بیشتر در مکتب کمونیسم یا مسلک کمونیسم مطرح میشه اونها نسبت به انسان همین تصوره از اینمی تشارلیز داروین گرفتن که انسان یک وقت میکروب بود نهایت عمر از بعد از میکروب بودنش شادی شد نهایت عمر این تکامل کرد سوال اینجاست که همین حیوانات همین شادی حال چرا تکامل نمی کند یک انتقاد را که مستقیم بالای اینها میگه از نظر تیبی هم میبینیم که 48 کروموزوم در شادی است و 46 در انسان و یک کروموزوم که تغییر و تبدیل میشه زمین آسمان در ما در یک یک پیکر تغییر وجودمه و ما دیدیم که اینا میگن که میگه خواست که انسان حال از اینا سوال کنی که چرا یک چیز دیگه را نخواست و ما ببینیم ده ده. شادی های کنر 100 سال پیش هم به در شادی بود عالم شادی است و این شادی ها تا تکامل نکرده و از نظر کلی و از نظر طبی به علم طب کنی کلا یعنی تفاوت بسیار بنیادی در انسان و حیوان می میبیند و این تصور یک تصور غلط و یک تصور بیبنیاد است و در حد نظر بود همان وقت هم در حد نظر بود خو اینا از نواهی دیگر این نظر چی میکردن تقویت میکردن و میخواستن که نظر بالای بشریت چی کنند تحمیل کنند استاد در رابطه به عقیده از این مردم قرآن کریم هم چیز گفتن طبیعی است که قرآن کریم به این مردم دهری خطاب کرده و بله. مردم که از دهری کسان در اصل رسول الله صلی علیه و بعد از آم کسان بودن که اونا اینمی نظریه را با یک شیوه دیگه چی میکردن؟ با یک شیوه غیر از شیوه امروز به مردم تقدیم میکردن و امان صفات کمال و تدبر و امان صفات چلاندن کون و چلاندن کائنات و توسط یک ذات مدبر نسبت میدادند به کاون و میگفتن که اینمی طبیعت است که باعث ایجاد از این موجودات می شود. و یک عقیده الهادی و یک مکتب کفری است که اینا در اسناد دپایی که متعلق به این مکتب است میگن که ما بسی چیز کافر هستیم یکی به الله دین و مالکیت فردی و سه چیز ایمان داریم مارکس کسی که در 18 همین عقیده رو وضع کرد و لینین کسی که در 19 عبده ای کرد و استالین هر کسی که علای از این نظریه خیس سرش چی کرد سبک کرد امروز هم ای شکل از اشکال در کشورهای اسلامی نام نهاد مورد تطبیق قرار می گیرد فرقش با نظام مادی فردی همین است که فردیت دین کلن از دین و تصور الله سبحانه و تصور آخرت کلن از زندگی خود بیرون نمی کند. بلکه میگن که این تصور باشه خب محدود باشه در معبد و مسجد و کلیسا <تصفح> یعنی یک رابطه اخلاقی باشه بین الله و بنده ولی <تصفح> در ناهی نظام نظامداری باز میگه انسان انسان مکلف است که نظام بسازد حلال کند حرام کند و قانون گذاری کند <تصفح> <تصفح> و در قالب کمونیسم که میگه مطلق بازینا بر نفع همی مثلا بود که وقتی که داوود خان به قدرت رسید که مونست ها ها و پرچمی ها هم به قدرت رساندن آن دست داشتن و بعض اجتماعات وقتی که اینا می نشستند به مردم می گفتند که اگر شما هم می مثل اروپایی ها واره ترقی کنید پس شما چی کنید؟ مناجات و دینداری و دین پسندی رها ها کنید همی عقیده را در بعض لفافه بر مردم باز همی عقیده از اینا در دیگر عدیان و مذاهید هم سرایت کرد یا خیر و یا در اسلام چطور باره مسلمان هم تاثیر گذاشته یا خیر بله ها تاثیر گذاشته چون در افغانستان ما که بخش اعظم مردم به امین حقیده ملحد و کافر شدن امین عقیده بود که کلن از فرهنگ زندگی بعض افغان هایی که در حزب و خلق و پرچم و ستمی و شولهی داخل شدن از, از عقیده اصیل خود که عقیده شرعی و عقیده اسلامی بود و تصور الله در او عقیده یعنی مورد بحث بود و توحید مورد بحث بود کلن از چی خود کشیدن و اینا کسانه بودند که با فرا گرفتن تصور الهادی کمیونیزم چی کردن؟ مطلق دین و دینداری را از وجود خود کشه. ای که سراحتنی عقیده خود تقدین نمیکرن چون جامعه افغانی یک جامعه سنتی بود و وقتی که سراحت میکردی احساسات سنتی در جامعه عاکم بود زود واکنش در مقابلت مردم یعنی زود مردم در مقابلت اقدام میکرد حالا ما میبینیم هم چند وقت پیش که در افغانستان فضای سنتی حال محاکم است که یک نفر ولو که بسیار بی دین هم باشه خوب ولی دین که تخت و تاز میشه ای یک نوی احساساتش تحریک میشه و این کمونستا در قالب خلقیت و پرچمیت اینمی عقیده خوده شکل بسیار ماهرانه پیش میکرد و تعداد کثیری از مردم ملحج امروز هم اولاد از اوک نیروید اما مفکوره را از پدر میگیره که کمونستا بر پدرش تقدیم کرده بود. الله خیر شنانده های گرامی شنیدید که نظام دهری یعنی نظام کمونیسم کدام نظام است و انشالله بحث ما ادامه خواهد داشت در دا برنامه های آینده باز هم بالای جهانبینی صحبت خواهیم کرد انشالله که تمام مسلمان ها بدانند که عقیده کمونیسم عقیده دهری یک عقیده بسیار مزخرف است و تمام مسلمان از این اقاید پوچ مزخرف خوده به دور نگه دارن خب شنانده های گرامی در دقایق اخیر برنامه قرار داریم تا برنامه اینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عز وجل مسبالین السلام علیکم و رحمت الله و گل های خراسان،, خراسان آیا شما میخواید که را دیو صدای خلافت را از بر ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیهوی باشه با که دختر های سطری میکنی خلاف اسلام است میتونی برمه بگید که کدام کدام دعا رو یاد داری؟ دعای نم خوردن دعای از خیستن دعای خو کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزو است که بیایند به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گل های خراسانند که در کوه های خشک های بی پایان و آواز های حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند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 قیام و حجت پرسیش های داغ و کردن حجت قبل قائم کردن حجت قبل از قتال. وجود امدادن امارات. تنظیم های تقریباً در افغانستان در مقابل روسا مصرف جنگ بودند اینا دشمن های موحیدین بودند دشمن های خاص موحیدین بودند اینا میخواستند که نام و نشان توحید و موحیدین را از سرزمین افغانستان نابود بسازند مباحثه سیاسی و تحلیلی در مفاهیم شرعی در مجموع میدیا رسانه های جمعی و مدبوعات زیر اثر غربی ها هستند دشمن که علای ما می جنگن به دو قسمت یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد پنجشن ب شب ها از رادیو صدای خلافت 90 FM حقامت دوله الاسلام صالت و على الطاو تجأت الاسلام صالت و على الطاو تجأت الاسلام صالت و على الطاو تجأت دوله الاسلام صالت و على الطاو تجأت الاسلام صالت و على الطاو دولت الاسلام صالت و علی مومینی رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا شب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم همه ایتان را به الله واحد و لا شریک میسپاریم همچینان شنیدنی قسمت اولی تاریخچه مختصری دولت اسلامی را فردا شب از نود فیم فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.